قبل از اینکه شروع بکنید تدارک ببینید هرقدر هم از توانایی های خود استفاده بکنید نمیتوانید در مدت عمرتان از همه توانایی های بالقوه خود استفاده نمایید جیمز تی مکای یکی از بهترین روش های غلبه بر مصاحه کاری و تنبلی و انجام دادن سریعتر کارهایی است که قبل از دست به کار شدن شرایط را برای انجام دادن کار پیش رو مهیا سازید و تدارک لازم را ببینید. وقتی کاملا آماده شدید در حکم یک تفنگ فشن شده و یا کمانی هستید که زهش کشیده شده و آمادهی رها شدن است. تنها به یک حل کوچک ذهنی احتیاج دارید تا مهمترین و ارزشمندترین کارتان را شروع کنید. این شبیه تهیه همه وسائل و لازمه های یک شام مفصل است. همه مواد را روی میز پیش روی خود قرار می دهید و بعد تهیه شام را شروع می کنید. کارها را یکی یکی و به نوبت انجام می دهید. قبل از شروع میزتان را پاک و خلوت کنید. به طوری که تنها یک کار برای انجام دادن داشته باشید. در صورتی که امکانش وجود داشته باشد، جز این کار همه کارها را روی صحن اتاق پشت سرتان بگذارید. همه اطلاعات، گزارشها، تفصیلها، نوشته ها و را که به آن احتیاج دارید تا کارتان را انجام بدهید تدارک ببینید. آنها را جایی نزدیک به خود داشته باشید تا مجبور نشوید که میزتان را ترک کنید و یا بیش از اندازه جا جابجا شوید. دقت کنید که همه ابزار نوشتن، دیسک کامپیوتری، کد های مورد نیاز، آدرس های اینترنتی و هر چیز دیگری را که برای انجام دادن کارتان به آن احتیاج دارید تدارک ببینید. محیط کارتان را به شکلی آرایش و نظم بدهید که راحت، جذاب و مناسب کار در زمانی طولانی باشد به خصوص دقت کنید که صندلیتان راحت باشد باید بتوانید به راحتی به پشتی صندلی تکیه بدهید و پاهای خود را روی زمین بگذارید محل کار راحتی ایجاد کنید مولّدترین اشخاص زمانی را صرف می تا مکان کارشان از نوعی باشد که از صرف وقت خود لذت ببرند. هرچه محل کارتان خلوتتر و پاکیزه باشد، شروع کردن کار و دست به کار شدن برایتان راحت‌تر می شود. یکی از روش عالی غلبه بر مسامه کاری، خوردن قرباغه ها، این است که همه چیز را از قبل به خوبی آماده کنید. وقتی همه چیز منظم و مرتب شد با میل و رغبت بیشتری می توانید کارتان را شروع کنید تدارک ببینید حیرت انگیز است که چند کتاب هرگز نوشته نمی شوند چند دوره درس هرگز به انتها نمی رسند، چند کار متحول کننده هرگز انجام نمی شوند و همه آنها به این علت که از قبل تدارک لازم دیده نمی شود. لس آنجلس همه سالها کسانی را از سرتاسر سر کشور به خود جلب می میکند که رؤیایشان این است فین بنویسند و آن را به یکی از استدیوها بفروشند. این اشخاص به لس آنجلس سفر می کنند و سالها در مشاغل نازل و کم درآمد کار می کنند و همچنان در رؤیای نوشتن و فروش یک فیلمنامه پرطرفدار به سر برند. چندی پیش لس آنجلس تایمز گزارشگری را به بلوار ویلشایر فرستاد تا با آبرین مصاحبه کند. این خبرنگار از اشخاص یک سوال می کرد. فیمنامت به کجا رسیده است؟ از هر چهار نفر سه نفر جواب می دادند تقریبا دارد تمام می شود. حقیقت غمانگیزی است که تقریبا دارد تمام می شود. احتمالا بدین من است که هنوز شروع نکردم. اجازه ندهید این اتفاق برای شما هم بیفتد. به سمت رؤیاهای خود به حرکت درآید. پس از آنکه تدارک لازم را دیدید، ضرورت دارد که بلافاصله برای تحقق اهداف خود دست به شوید. شروع کنید. اولین کار مهم را انجام بدهید. توصیه من این است کارتان را با 80 درصد درستی انجام بدهید و در پایان هر جا که لازم است اصلاحات لازم را به وجود آورید. انتظار نداشته باشید که همه کارهایتان 100 درصد بی‌عیب و نقص انجام شود. آمادگی آن را داشته باشید که قبل از رسیدن به موفقیت بارها و بارها شکست بخورید. بزرگترین دشمن که باید بر او غلبه کنیم ناتوانی و نداشتن فرصت مناسب نیست. بزرگترین دشمن پیش روی ما ترس از شکست خوردن، ترس از رد شدن و تردیدهایی است که در اثر اینها صورت خارجی پیدا می کند. تنها راه غلبه بر هراس انجام دادن کارهایی است که از آن می ترسید. امرسون می گوید کاری را که میترسید انجام بدهید. مرگ ترس حتمی است. قدم اول را بردارید. وقتی با آنچه لازم است سر میز می نشینید آماده انجام کار میشوید. بگذارید زبان تنتان مناسب شروع به کار باشد. راست و قائم بنشینید در جلوی صندلی و با فاصله از پشتی آن قرار بگیرید طوری رفتار کنید انگار که یک بازیگر موثر و بزرگ هستید بعد به سراغ اولین مطلب بروید اولین چیزی را که لازم دارید بردارید و به خود بگویید خب حالا شروع می کنم و شروع کنید وقتی شروع کردید آنقدر ادامه بدهید که کار تمام شود مورباقه را بخورید یک به میز یا دفتر کارتان نگاه دقیقی بیاندازی این کار را هم در خانه و هم در محل کارتان انجام بده از خودتان سؤالی بکنید چگونه آدمی در چنین محیطی کار میکنند دو هرچه محیط کارتان خلوتتر و منظمتر باشد مثبتتر رفتار میکنید و احساس آرامش بیشتری دارید امروز مسمم شوید که میزتان را مرتب کنید به اتاق کارتان نظمی بدهید تا احساس کنید که موثر و کارآمد هستید و هرگاه پشت میزتان مینشینید، مهیای کار می باشید.